یه تمرین رو میخوام براتون مطرح کنم که به شما خیلی کمک خواهد کرد و در راستای کلاس هپنتیز بمونه و تمرینی که خدمتون میگم یه تمرین 100 درصد عملیه یعنی اگه منظم تمرینش کنید خواهید دید که چقدر زندگی بهتر میشه و مهارت های چقدر بهتر میشه. این تمرین که از همین الان آغاز کنید توی ارتباطاتتون با همکاراتتون توی تجارتتون با مخاطبانتون با هر کسی که دورو براتونه اعضای خانواده خوب نگاه کنید که با استفاده از چه کلماتی چه نوع جملاتی با چه نوع زبان بدنی حتی بیشترین از سرگزایی رو با کمترین مقاومت میتونید ایجاد کنید یعنی طرف مقاومتی بر پذیر شرف شما نداشته باشه مثال میزنم من این سری مثال خیلی اشتباه میزنم یعنی مثالی که غلط اجراش اگه اینطوری اجراش کنید که دقیقا دستتون بیاد مثلا فرض کنید که شما لم بدید روی یه سندلی و بعد بیاید همزامایی که لم دادید و پاتون دراز کرد به نفر بگید که بیا کفشان واکس بزن خوب نگاه کنید که چقدر مقاومت داره و چقدر یه جورهای طرف مقابل اصلا مقاومت شدید نشون خواهد داد قطعا خب مثال دیگه این که شما میخواید از یه نفر پول بگیرید یا میخواید برید مثلا یه چیزی رو بفروشید به کسی بعد بیافتید دنبالش شوید تو رو خدای رو ازم بخرید میخری قول میدی امروز بخری، امروز میخری یا فردا قول میدی به هم. چه حسی داره. میونی که چقدر مقاومت داره، چقدر مقاومت ایجاد میکنه. مثال دیگه شما به یه خانم بگید که تو واقعا فوق زیبایی من اصلاً نمیتونم باور کنم که، تو اینقدر زیبایی چطور ممکنه اموا اقسام جملات اینجوری نگاه کنید برای چنین جملاتی هم نگاه کنید که چطور ممکنه بعضی‌ها اصلا مقاومت داشته باشن نسبت پذیرشش وقتی شما مثلا عرض کردم توی فایل قبلی مثلا به یه نفر شما میگید که تو زیباترین آدمی است که من تو کل عمرم دیدم اه... حتی کسی که اعتماد هست بالایی داشته باشن چه بسا خوب بتونن این رو بپذیرن و اتفاق خیلی بیشتر از اون کسی که اعتادش در سطح میانی و پایینتر از اون هست خیلی مقاومت نشون میده. یعنی اصلا میگه با با این دروغ داره میگه یا یه هدفی داره یه منظوری داشت. اینا همه مقاومت هاست و بعد بیاید در راه خودتون نگاه کنید ببینید که این چیزی که میگم تین عملیه دیگه ختون هستم و خیلی موثر خیلی چیزا به شما یاد میده از امروز دقت کنید وقتی چطور با خودتون حرف میزنید مقاومت کمتره وقتی مثلا به خودتون میگید من صد درصد توی چه کنکور قبول میشم حالا کسایی که کنکور دارن توی سینه مربوط به دانشگاه اینا هستن ببینید آیا براتون این جمله مقامت داره یا نداره و اصلا به صورت کلی چه نوع جملاتی برای شما کمتری مقامت رو داره این تمرین اگه منظم انجام بدید و تنوع بدید بهش در هر موضوع این تمرین رو داشته باشید میبینید که چقدر بیشتر در برای ارتباط هیبنوتیزمی یاد گرفتید و زمانی که بتونید توی ارتباط هاتون با خودتون یا دیگران کمتری مقامت داشته باشید طبق تعریف هیبنوتیزم که قبلتر گفتیم توی این کلاس هیبنوتیزم در این تعریف هیبنوتیزم ارتباط با کمترین مقامت و بالاترین سطح اثر گذاری.